حكایت شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند، سر بنهادم و شطربان را گفتم دست از من بدار، پای مسکین پیاده چند رود که از تحمل ستوه شد بختی، تا شود جسم فربهی لاغر، لاغری مرده باشد از سختی، گفته ای برادر حرم در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی بردی، وگر خفتی مردی، خوش است زیر مقیلان به راه بادی خفت شب رهیل، ولی ترک جان به باید گفت.